خب بسر الله الرحمن الرحیم النکرتو والمعرفه والمعرفه نکره و معرفه اقسام و المعارف سروران اینجا دو گروه از امثله رو آورده گروه اول فقط نکره ها رو مثال آورده در گروه دوم معرفه رو آورده هفت مثال آورده در گروه دوم به خاطر که معرفه ها هفت نوعند پس در امثله در این درس دقیق بوده اوا ذئبون صدا کرد او او کرد گرگی ذئبون فائل هست ولی نکره هست چه هست؟ اثمرت شجرتون درختی ثمره داد مشخص نیست کدوم درخت نکره هست فائل طلع نجم طلوع کرد ستارهی باز هم نکره است. اما در امثلی گروه دوم انت کریمون انت مبتدا محلن مرفوع کریمون خبر معروف وازم کریمون نکره است ولی انت چه است است <تصفيق> معرفه هست. در این درس در این درس یعنی در این امثله یک معرفه داریم یک نکره انت معرفه است کریمون نکره است خالدون شجاعون خالدون معرفه است شجاعون نكره هذه وردتون همچنین ما ترجمه قریبون ما معرفه هست المریضو معرفه هست باب داری جمیلون باب معرفه هست یا رجلو استقیم رجل معرفه است. بخاطر که در قواعد تکرار میشه دیگه ما نمیگیم که چرا معرفه هست النکرتو تو اسمون یدولو علاشه این غیرمعین نکره اسمی از دلالت بر چیز غیرمعینی بکنه مانند عواضع بان گورگی او او کرد معلوم نیست کدوم گرگ گورگی نکره هست چه هست؟ اگر ما بگیم شاگیر دی آمدین نکرست اما اگر بگیم انس مدین دلالت بر کی میکنه؟ آره خب المعرفت و اسم نیدولو به عینه بعینه اسم است دلالت بر چیزی به میکند سد و حفتات و دو المعرفت و سب آن معرفت هستند هستن و هی عبارتاً از زمیر معنند انت کریمون انت الالم معنند خالدون مثالت بعدی اسم الإشارة معنى هذه وردة والاسم الموصول معنى ما ترجوه قريب ما ترجوه ما, ما باب والمحلة بأل أوليك لفلام داره معنى المريز متعلم المريز والمضاف إلى معرفة كلميك مضاف بمعرفة باشه معنى باب الداري باب معرفة شرات المضافة بمعرفة هست والمعرف بالنداء معرفه به ندا مانند يا رجل استق سر این باب نقش بابو مبتدا هست الدر مضاف الیه هست جمیلون هم خبر هست مضاف نقش اگر باب مبتدا و مزاف، نقشش مبتداه اعرابش مبتداه به خاطر این بابون مبتدا مضاف هست ادار مضاف نیله اگر ما بگیم باب مضاف خالی دیگه این ما اعرابشو بیان نکردیم چون مضاف میتونه مرکوب باشه میتونه منصوب باشه چی هست با عمل اعراب میپذیره ما باید اعرابشو تعیین کنیم اعرابش مبتدا هست و الهمیل مبتدا مضاف هست بجی به کلمه بعدی که مضاف نیله خب این بود از درس معرفه و نکره که خیلی